حديث بي سبحانجوم فرمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلو يا أسلو شهادة هردوتو خندشده اما صلح هم با ضام هم با کسر ولی خب بیشترش با س... با کسره. سل هم مرد سل که معروفه بالا گفته شده که این مرض در اثر سرمایه شدید عفونت وارد ریه های انسان میشه و سبب تپ شدید میشه که انسان سبب فوت انسان میشه حدیث ما این حدیث یا احادیسی که درش بحث شهادت اومده زیاده مثلا داریم ان... نفسه و شهاده کسی که در نفاسش به میری شهید بعد از زایمان الحرق و شهاده داریم که یا حر کسی که در آتش سو بشه. اول غرق بشه غرق و شهادت کسی که غرق بشه در دریا اینا پاداش و اجر شهادت رو داره نه اینکه حکم شهید معرکه رو داره استاد داده نشه و الی آخری. اون کسی که ناقم فضیلتی که در بحث شهید در راه الله در جنگ رو داره که با شمشیر شهید میشه اون اجر خاص خودش رو داره و اینا پاداش یا یا اجر شهید رو دارن اونها یک فضیلتی برات از رو دارن که الله صلی الله علیه و آله کفه به بارقه فتنه از کسی که در معركه شهید بشه دیگه, دیگه در درقب سوال نمیشه فتنه نمیشه منکر و این ازش سوال نمیپرسن رسول الله بفرما صلی الله علیه و سلم بفرما کف به بارقه سیوف الا هم فتنه یعنی اون برق شمشیری که در جنگ می اومد که گردن اونها رو از سنجدا کنه یا اونها رو شهید کنه برق اون شمشیر کفایت در فتنه شون که در فتنه نشن اون پاداش خاص اونها هست همچنین بحث کفن نشدنشون با همون لباس دف شدنشون اون خاص شهید مریکه است یا بحث نماز اینا هم میاد اینها این چند سنفی که من گفتم شیخ الوانی رحمه الله در احکام جنایز شماری از اینهایی که پاداش شهادت رو دارن یاد کرده نمیدونم 20 دقیقو نزدیک کنم 20 مورد باشه کسی زنی زنی که حامله باشه و کسی که نفسا باشه در نفاسش بمیره کسی که بسوزه کسی که غرق بشه کسی که با درد شکم از دنیا بره کسی که با از دنیا بره مثل الان همین بحث سل یا سل یکی از امراضی هست که همراه با یک شهادتی برای اون شخص محسوب میشه یک حسن خاتمه هست حسن خاتمه ها زیاده الله به متوفیخ بده که در عبادتش و با اطاعتش از دنیا بریم و در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمايان که از نشانه‌های نیک از دنیا رفتن اینکه الله انسان رو خوشکام بکنه رسول سر جل میفرمایند او را تعصیل می‌کنه یعنی عسلوار یا با طعم عسل یا مزه عسل یا با شیرینی عسل از دنیا او را, او را از دنیا میبره بعد فرمودن چطور فرمودن که او را توفیق عملی میده عبادتی میده و با اون عبادت از دنیا بره خاطر همین انسان محافظت بکنه استوا خودشو استوار رو محکم نگه داره بعد روزه های نافله سنت های نافله کار همیشه در ذکر باشه یاد الله باشه بدونیم این خدمتی که میکنی به خودمون میکنی و ما یا ذکر الرحمن نقيض له شيطان الفوا وقرين بر ذکر عبادت و طاعت میشه که شیطان از ما دور بشه استقامت بکنی و بدونیم که اگر هدفمون استقامت باشه الله فرشتگانش هم برای استقامت ما میفرشه این الذین قالوا ربنا الله ثم استقام و تتنزل علیهم الملائک الا تخافو ولا تعترشک خیلی از اونما این در معرکه هست ولی خب الله برای حفظ بندگانش ملائکه را میفرست بدون شک احفظ الله ای الله با قدرتش با جبروت خودش انسان مؤمنش اون بنده مؤمنش اون ولی خودش که خودش را بر توحید و یگانگی خالق و یک تا نگه داشته و محافظت و موازبت داره بر طاعت و عبادتش او را حفظ میکنه